و آلهی و صاحبهی اجمعین اما بعد هشتومین جلسه هست از جلسات مروری بر کتاب الحاد دکتر صالح سندی رسیدیم صفحه پنجاه و سه ما مروری داشتیم بر نظریات فلسفی و منطقی که به قول خودشون بهش سناد می از اون تئوری هایی که دارن از بحث عقل و بحث شک و تردید و صحبه مطلبی که ما داشتیم بحث قضا و قدر بود و شک و شبههی که راجع به مسئله فساد بر روی زمین و تقدیرات و مقدرات الهی داشته خب همین هم مرور داشتیم خصوصا یکی از مهمترین جلساتمون جلسهی گذشته و ما قبلش بود اما چهارمین مغالتشون چهارمین تئوری و نظریاتی که هدفشون از این تهوری ها از این نظریات شک و شبهه وارد کردن بر روی اسلامه بر روی بر حق بودن دین اسلام خب اینجا معلف میگوید رابعا تلبیسات و مقالطات عقلیه یعتمدو علیه الملاحده یک سری تلبیسات و یک سری مقالطه اندازی عقلی هست که ملاحده ملحدین بهش استناد میکنن فمن مقالطات همون عقلیه و تلبیساته از جمله مقالطه اندازی هاشون از جمله دروغهاشون اَنَّهُمْ اِذَا نَظَرَهُمْ مُسْلِمَ وَبَيِّنَنَ لهم قانون سَبَبِيَّةِ وقتی که یک مسلمانی باشون بحث میکنه و قانون سببیت را باشون بهشون مترح میکنه قانون سببیت اینه که هر حادثهی نیاز به محدثی داره یعنی نیاز داره اون حادثه که یک کسی اون حادثه رو انجام بده و الى آخر حالا انشالله در زمین اینجا معلی فش میکنه که بهش خواهیم پرده و, انه و انه كل کل فلا فلابد الله من محدث هر حادثه نیاز به وجود آورنده محدثی داره یعنی یک حادثه نیاز به یک کسی داره که اون حادثه را انجام بده و کل ما وجده من عدم فلا الله و من خالق هر چیزی که از عدم به وجود اومده نیاز من به خالقی داره یعنی ما حوادثی که داریم میبینیم روخ میده خب کسی داره انجام میده اون کسی کی اورورده از کجا آمده من چطور به وجود اومدم پدرم پدرم تا میرسیم به آدم آدم از کجا بوده؟ آدم بوده قبل از آدم کسی نبوده قبل از اینکه آسمان و زمین باشه چیزی نبوده خب اینها رو از هیچ کی به وجود آورده خب مسلماً خالق به وجود آورده یعنی یک آفریدگاری بوده که اینها رو از آدم از هیچ به وجود ورده خب این یک مسلمان میاد با یک ملحدی بحث میکنه خب ملحد اینجا مقالت اندازی میکنه فا این الملحده یسألو به اینجا با کمال نادانی اعتراض وارد میکنه ملحد خب میگه سلم نبان الله خلق کلشی فمن خلق الله خب میگه ما الان تسلیم بشیم این که حرف شما درسته و این قاعده درسته و الله هم آفریدگاره خب الله رو کی به وجود ورده الله چطور وجود اومده؟ خب و لم یطبق قانون سببیه علیه ایضا چرا قانون سببی بر روی خالق شما اجرا نکردید چرا این قانون رو به خدا که آفریدگاره پروردگاره دید؟ و هذا سؤال فاسد این سؤال از اساس اشتباه چرا از اساس اشتباه ما وقتی که درباره حادثه صحبت داریم میکنیم که نیاز به به وجود آورنده ای داره و اون به وجود آورنده نیاز به خالق آفریدگاری داره خب اونجا بحث از مخلوق و خالق یعنی اون مخلوقی که به وجود اومده و اون تسلسل سببی که وجود داره برمیگرده به عدم از عدم کیور رو به وجود آورده یک آفریدگاری الان اینها اومدن اون چیزی که برمیگرده به مخلوق و تسلسل اون حادثه در اون در اون حوادثی که رخ داده در اون بحث سببی بودن خب اینها میان این قضیه را چکار میکنن این قضیه‌ای که به مخلوق متعلق هست به خالق برمیگردونن یعنی همین قاعده قاعده اساسش گذاشته شده برای مخلوق خب حالا اینا اومدن چی برش گردوندن به خالق و آفریدگاری یکتا خب میگه این سال فاسده چرا فاسده فالملحد یسلم و, و خالق ملحدها اول اومد اینجا. قبول که گفت که من پذیرفتم که خالقی آفریدگاری وجود داره. تو من یقول من خلقه. خب الان بل فرضه این که خالق شما گفتید آفریدگار. حرف شما درست. کی آفریدگار را خلقت کرده؟ اینجا میگه چی؟ این جهل نادانی معلف میگه. تو اقرار میکنی که خالقه آفریدگاره. بعد میگی این آفریدگاره چطور وجود اومده خب نمیشه که خودش آفریدگاره. آفریدگار نیاز نداره کسی او رو به وجود بیاره خودش آفریدگاره آفریننده است پروردگاره نیاز نداره کسی او رو به وجود بیاره خب این سال از همون ابتدا اشتباه است شما اگر قبول کردی گفتی حالا من تسلیم میشم که این خدای وجود داره و این پروردگار رو آفریدگاره و آفر، آفریننده است خب قبول کردی خب چطور میخوای این قاعده نسبی و سببی را به الله منعکسش بکنی در صورت که این قاعده برای مخلوقه نمیشه. فیجعل منه خالقا ومخلوقا فی نفس الوقت. یعنی همزمان با اینکه قبول داره که خالقه می قبول می‌کنم بر فرض که خالقه آفرینده‌گره. خب چگونه آفریده شده؟ یعنی چگونه مخلوق شده؟ من قبول کردم که خالقه. خب حالا این خالقه چطور خلق شده؟ خب اینکه خلق شوده که میشه مخلوق. دیگه خالق نیست. یا خالق یا مخلوق. فیج علم منه خالقان و مخلوقان و فی نفس ال نفس الجمله. و هاذا تناقض واضح فی بدایه العقولی بطور بدیهی. یعنی بدون هیچ تفکر اندیشی، بطلانش واضحه. یعنی نیاز نیست که مثلاً مباحث جدایی بکنیم. چون ما در قبول کردید آفریدار و آفرینانده هست. دیگه نمیتونید بگی که چطور آفریده شده. شن آفریننده هست لأن الخالق لا يمکنن يكون مخروق آفرید. پر نمیتونه نمیتونه مخلوق باشه خالقه، نمیتونه مخلوق باشه مخلوق هم نمیتونه خالقه همیتونه هم برعکس مخلوق هم نمیتونه خالق باشه نمیتونه از عدم یه چیز رو به وجود بیاره مخلوق توانش محدوده مخلوق از عدم نتونسته و نخواه ی هادم تونست یه چیزی رو بی آفرینه آفریننده بشه افریدگار باشه مخلوق نمیتونه خب این اولین مغالطه شف. دو دومین مغالطه و من تلبیسات و مغالطات همین از دروغاشون مغالطه اندازیشون ايضا انهم يطرحون اسئله اسئله غايه في الغبا هز جمله سوال هایی که در نهایت نادونیشن مطرح میکنن میگه یقول احدهم مثلا به فرض مثال یکی از اونها میگه و هو سؤال قدیم سوالی هست که قبلا بوده و الانم هست هل يستطيع الله خلق صخره لا يستطيع حملها؟ خدا میتونه یک صخره بزرگی را خلقت بکنه و بعد نتونه بلندش بکنه خب هدفشون از این شبه چیه؟ این که بگن که یا خداوند تواناست یا ناتوانه. اگر تواناست که آفرید خب پسیه دیگه عاجز مونده بعد از اینکه دیگه بیافرینه بعد دیگه بلندش بکنه و یا این که نمیتونه که بازم دیگه آجزه یعنی در هر دو مطلب، در هر دو صورت اون آفریدگاره میشه آجز هدفشون اینه خب الان بریم به سؤالشون و شبهشون و مقالطه اندازشون خب و هده سؤال و هده سؤال و امثال و فیه مقالطتون عقلیتون کبیره یک مقالطه اندازی عقل عقلانی بزرگیه این قضیه یعنی این مسال و هدف شبهه و هدفه الزام و الم به ملزم بکنن که به این برسیم به نتیجه برسیم که خداوند فانه فا اینهو لا لایستطی اگر بگه که نه نمیتونه این نمیتونه یک سخری رو بیافرینه که بد نتونه بلند بکنه قالو کف یکون ربن و هو عاجزان عنال خلق چونه چو میتونه پروردگار و آفریدگار باشه و عاجز ناتوان از این که یک مخلوقی را بیافرینه میگه میشه خالق عاجز باشه و این قال یستقی اگر هم بگه میتونه قالو کیف یکونه ربن و هو عاجزون عن الحم چونه میتونه پروردگار و آفریدگار باشه و نتونه حملش بکنه و اون چیزی که خلق قرده و آفریده در هر دو صورت الله رو ناتوان جلوه میدن هدفشون اینه که بگن الله ناتوانه فهدف هدف هاده سؤال تشکیک و المؤمنه فی قدرت الله عز وجه هدفشون اینه که شک و شبه برای ما در الله جل و علا و در قدرتش ایجاد بکنم میخوام به این نتیجه برسن که اللهی که شما دارید میفرسید ناتوان و عاجزه و به تشکیک و حوفی وجودهی در نتیجه شک و شبهه در وجود خالق آفریدگار فریدگار بیندازد و هو عند تعملی سؤال عبثی وقتی که شما بنگرید قشنگ دقیقت بکنید در این قاعده میدونید که این یک سوال بیهوده و مغالط اندازی هست؟ لا اقل ولا اكثر. یعنی هدف فقط همینه که یک شبهه در قلب ما ایجاد بکنن با با من من و و ما را نسبت به آفریدگاری که میپرسیم و خالقمون آفریدگارمون دوچار شک و تردید بشیم و دلیل آخر على ان الموقف للحادی موقف موقف عبثی یعنی شما اگر خوب دقت بکنید تو سآل هایی که مطرح میکنن خب اون مغالطه گریشون واضحه یعنی یک سوالاتی علکی بیهوده مطرح میکنن که شخصی که درایت نداره به خصوصا به علم توحید علم عقیده این شک و شبه درش تأثیر میداره فکر میکنه که سوال این طرف درسته در سویت که اساس سوال اشتباه اساس سوال اشتباس مثل همون صورت مسئله قبلی اگر قبول کردید که خالقه که نمیتونه مخلوق باشه قانون سببی رو روش اجرا بکنه که هر حادثه نیاز به محدثی داره اگر شما قبول کردید که خدا قادره و خالق آفریدگاره شما اگر قبول کردید به قدرتش اون قدرته بر هر کاری دیگه عجز ازش منتفی میشه اگر الله شد قدیر و قادر و مقتدر بر هر کاری توانا شد دیگه اون عاجز بر اون قادر حمله میشه یعنی اون قادره نمیتونه عاجز باشه چون قادره بر هر کاری چطور میشه عاجز باشه شما دارید میگید چطور خداوند هم قادره و هم عاجز میخوای به این نتیجه برسید دیگه میگی میخوای بگید که این قادری که شما میپرسید شک در قدرتش وارد میکنید که این عاجزه ما میگیم قادر نمیتونه و نمیشه عاجز باشه. الله جلب علی آفریدگاره. قادر به آفرینش هر چیزی هست. خب خواهلا سوالشون آیا میتونه هم چیزی یا بیافرینه بعد عاجز باشه از حملش؟ خوب شما دارید دوباره عجز و مطرح میکنید چطور شما میگید خدا بیافرینه قادر باشه بعد اون قادر عاجز باشه نمیشه یک <تصفح> قادر نمیتونه عاجز باشه دو تا صفت متناقض را نمیشه با همدیگه دیگه یک جا جمع کرد دو تا صفت متناقض هوا سرده هوا سرده چطور من در هوای مثلا همبلفرز یعنی هوای سرد مثلا همبلفرز حالا مثلا از من میپرسن هوا سرده؟ بعد میگم بله سرده حالا چطور میتونم وقتی که مثلا شخص دارم میگه هوا سرده احساس بکنم که نه هوا گرمه میشه؟ یعنی میشه هوا گرم باشه بعد میگم نه سرده سرد زده گرمه یا هوا گرمه یا هوا سرده دوتا با هم دیگه جمع نمیشه نمیشه یک شخصی قادر باشه و در همون قادر قدرتش مطلق باشه و در همون عین حالی که قدرت و توانایش مطلقه قادر بر هر کاری که الله جل و در قرآن زیاد میگه و الله علیه کلش این قدیر بر هر کاری تواناست قدرتش مطلقه ما صفت عجز را بهش نسبت بدیم بگیم که نعاجزم هست این نقض اقرار ما به قادر بودن الله جل و علیه هست خب من فهذا سؤال فاسد؟ إن سؤال أعزب تدف فاسد أي أنه غير صحيح إن سؤال صحيح نيس في أصله عسلش أساس صحيح نيس فاسد بل يفسد بعضه وبعض إن السؤال ناقذ ميكون قسمة ديجرة السؤال وينقض آخره أوله آخرش أبلش ناقذ ميكون لأنه من البديهي أن من قدر على أن يخلق الصخرة از بدیهیات کسی که قادر باشه یک صخره ای رو خلقت بکنه و یوجدها من العدم از عدم اونو به وجود بیاره فقو قادرن علی حملها من باب اوله از بابه اوله میتونه حمل بکنه صخره رو به وجود آورده از هیچ چیز نبوده به وجود آورده بعد نتونه حملش بکنه بشه ناتوان قادر بوده از هیچ چیزی اونو به وجود بیاره بعد بشه ناتوان بر حملش نمیشه خب سوالتون فنحن نعتقد أن الله على كل شيء قدر يعتقد مبرئينك الله جل وعلا برهر كاريته وعليه فهو قادر على خلق أي صخرة مهما بلغت في الكبر حرج قد صخرة بزروش الله قادر برعفل وعلى حملها أيضا وبر حملش وهذا هو الكمال إن كمال الله جل وعلا وإذا كنت أيها الملحد تعتبر الكمال عجزا أكتوين ملحد كمال الله رجل والعز مني فهذه مشكلة في عقلك تحتاج إلى علاجين مشکل در عقل توسکی نیاز به درمان داره تو نتونسی تصور،, نتونسی تصور بکنی قدرت الهی، قدرت الله جل و علا قدرت الله جل و علا هیچ وقت نمیشه به یک مستحیلی، یک چیز ناممکنی ارتباط داد یعنی ما بگیم آیا الله جل و علا بر یک چیزی غیر ممکن؟ قادر هست الله بر هر کاری قادر هست الله بر هر کاری قادر هست قدرت الله جل و علا به یک چیز مستحیل به یک چیز غیر ممکن نمیشه نسبت داد چطور جنب بندیم بین قدرت و عجز نمیشه نمیشه کسی که قدرتش مطلقه آجز باشه و قدرت الله جل و علا از صفاتشه صفاتش که ما در خلقش از اون توانه الله جل و علا میبینیم و صفت بزرگ الله جل و علا این آسوان ها و این آفرینش هستی و این کیهان و کهکشان را اینچنین با این عظمت الله جل و علا خلقت کرده آفریده از عدم به وجود ورده قدرت الله جل و علا برمیگرده یه چیز ممکن نبوده الله جل و علا به وجود ورده امکانش داشته که به وجود بیاد یه چیزی که امکان نداره به وجود بیاد اونجا دیگه به اراده و قدرت الهی نسبت داده نمیشه اونجا به قدرت الهی نسبت داده نمیشه اون چیزی که قناه ممکنه ممکن را الله جل و به وجود میاره خورشید، گرمه با اون انفجاراتی که درش ایجاد بشه این خورشیده با اون تابشش سرما تولید بکنه با اون انفجاری که توش میشه میشه الله میتونه که قادر بر هر کاری ولی که میشه هم گرم باشه و هم سرد باشه نه نمیشه در عین حالی که گرم و سرد باشه نمیشه الله بخاط کن فیکون میکنه میخواد نابودش میکنه میخواد تبدیل به سرماش میکنه ولی که سرما و گرما زدت هم دیگره. اگر عقل و شعور ما داریم میتونیم تشخیص بیدیم که قطب شمال غیر از, قطب، غیر از خط استواست میتونیم تشخیص بیدیم چون گرما را حس کردیم سرما را حس کردیم ولی کسی که سرما و گرما را حس نکرده کسی که نمیدونه قدرت چیه چی عجز چطور میخوای حالیش بکنی. نهایت جهل و نادانیه نهایت جهل و نادانیه یک مغالطه هست یک سآل بیهوده و علکیه یک سآل افترازی که از اساسش اشتباه چطور افترا فرزن ما بگیم مثلا فرض بکنیم که خدا عاجزه بگیم میشه. آفرینده باشه. بعد آفرینده و آفریدگار عاجز باشه. پس این ممکن نیست. خب از جمله تلبیسات و از جمله شبهات و مقال اندازیشون و دروغاشون. و مما یولب سو بیه الملاحده تو ایضا. زعمهم أن في الإسلام أشياء متناقضة تتعرض العقل مين كده الإسلام يصير شيزات؟ بقى هذي تعارض داره باب. در ذهن إيجاد التعارض ميكونه. ويودون على هذا شبهان. إيش سيري شبهات متره؟ ميكون منها على وجه التأنيث. جملا مثلاها برئي قصية يقولون حديث سجود الشمس تحت العرش. لا يمكن قبوله وعقله. بس شو ما حديث ميقدر يدار شيء مثلا داريت كياء هر روز مثلا میره زیر عرش مثلا سجده میکنه حالا عرش کجاست سجده خورشیده چطوره میگه میشه ما سجده میکنیم سر بر زمین میگذاریم حالا این خورشیده چجوری سر به زمین میذاره چطوره سر به خداون میذاره و سجده چطوره خب برای یک کسی که خورشید رو با خودش قیاس میگیره و اون سجده خودش را سجده خودش را که با اون دست و پا میاد پایین با اون اختیاراتی که خدا بهش داده با یک مخلوقی که از خودش اختیاران قیاس میگیره مسلمان در مقالطه بیفته مسلمان این که در در جهل و نادانی بیفته تو فرشته و تو جن و دیگر مخلوقاتی که شبیه انسان نیستن به انسان تشبیح میکنی قیاس میگیریم خوشی دستفاه داره. قیاست وقتی درسته که شبیه تو باشه. نه وقتی که شبیه تو نیست. حالا میریم انشاءالله به یک مسائل هست. اینجا معلف مطالب میکنه خیلی مهمه. با دقت ما مطالب را بخونیم تا بفهمیم که اینها فقط مغالطه اندازی میکنن. حرفشون و واقعیت و حقیقت نداره. خب اما اهل ایمان میگه ولیس عندهم ادنا شک من که مثلا مؤمنه شکی ندارم که حدیث صحیح ثابته و خورشیدم برای خودش سجدی داره خورشیدم برای خودش سجدی داره نه سجدی مثلا سجدی داره چطور من نمیدونم ادنا شک فی التسلیم لهذا الحدیث هیچ مسلمانی شک و شبهه نداره حدیث ثابته سندش صحیح میگه بر سر چش فيعتقدون بالصدق ما جاء في هذا الحديث يقينًا قطعًا وانشيزي كدر این حدیث مده صابته صحيح لأنه من كلام الصادق المسطوق صلى الله عليه وسلم چون سخان سخانه یك شخص عددينيست یك شخصی هست که الله جل وعلاه رفرست ده في يوم وارو پیغمبر الالهية و الله رفر تصدیخ کرده وان معجزاتی که بهش داده بل هو من اصحح ما يكون من الاحادیث بلکه یكا صحيح ترین الحادیثی که از رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد شده ومعناه عندهم ان الشمس خلال جريها في فلكها في الفضاء فی مكان معین منه تكون ساجده لله تحت العرش. در اون مداری که داره میچرخه زیر عرش نمی دسته میکنه. چطور؟ مدار داره. خورشید مدار داره، زمین مدار داره، ماه مدار داره، مریخ، زحل، اورانوس، همه این سیاره ها برای خود برای خودشون مسیری در چرخش دارن. خورشید در اون مسیری که داره میچرخه در اون گردی و ان در اون دورانش یک جای زیر عرش سجده میکنه ولا شک ان جميع و ما فيه من الاجرام والافلاك تحت العرش شكيا هم نیست هرچی در این آفرینش هستی کیهان داریم در زیر عرش از زمین و عطارد و زحل همینا در زیر عرش و این كنا لا نعرف كيفيه هذا السجود هرچند کیفیت این سجده رو ما نمیدونیم ولی کن سجده خورشید حق اما بریم به بازگوشی ها و شیطنت ملحدی فالملاحده تیشکیبون علی المسلمین به های الحدیث شیطنت میکنن ملاحده مغالطه اندازی میکنه با این حدیث میگه مع انهم لو لازم الانصاف لکنه اولا بالتشغیب اگر انصاف و بکنیم یعنی ما باید اونها رو در, مغ... در مغالطه بندازیم نه ما رو در مغالطه بندازن یعنی ما باید اونها رو دار مغالطة بندازين اصل اينه فا اي القولين اولا بالقبول عندها للعقول كدوم بيكاز دوتا قول مردق قبولياته يعني كدوم بيكاز اين دوتا قول اولا ترى بدرستي و سواب القول بان شمسا ذات جرم كبير جدا و عظيم عظيمة جدا انك ما بيكين قرشي دي بزرق بان جرم بزرقش حر... بان حرارات خلي شديدش تسبح فی الفضاء شنا میکنه در اون فضا فی مسار محدود و منضبط در یک مداری داره حرکت میکنه سر میکنه و حدود لا تخرج عنها قید و ملل یک ذره یک ذره اثر انگشتش هم از اون مسیرش خارج نمیشه دقیق زمین هم داره خوشی داره دقیق میچرخه 24 ساعتش کامل 1440 دقیقش کامل میچرخه با اون و هذی شمس حدثت صدفه دون خلق خالق بعدم این خورشید تو این مدار با این بزرگی داره میچرد خیلطهی میکنید این مسیر منذبت درست بعد آفریدگاری نداره آفریدگاری نداره آفرینندهی نداره میشه چطور عقل تو این ملحد میتونه درک بکنه این مطلب چطور میتونی چطور میتونی این انزبات و این دقت و این نز را بدون تنظیم کننده و منظمی تصور بکنی. خب جای شگفتی نیست. اللهی که قادر بود این با این حرارت و با این جرم خلقت بکنه در این مسیر و شرخه قادر بر این که هم در یک مدار در یک جایی از اون فضا قدرت سجده را به خورشید بده. کسی که با این عظمت خلقت کرد این جرم با اون حرارت نمیتونه قدرت توانو برش بده که سجده بکنه میتونه. الله أفريدكار قدرت روبيش داد أما القول بأن الشمس التي خلقها الخالق العظيم القدير وصرفها حيث يشاء جعلها تحت تسجد تحت العرش في مكان معين دون أن نلحظ ذلك أو ندرك حقيقة يعني مثلا كدوم بكازين دوتار احتمال دروسي دار قول أول إن شمس سجده بكونا بوان عزمتش ون أفريدكار قدرت بشبت يمكننا بيوم این شمس با این قدرتش که الله جلال و علا بهش داده در یک مکان ما سجده بکنه بدون اینکه ما ببینیم حقیقتش امکان نیست یعنی یا اینکه بگیم یعنی تصور الله جبار از ابتدای دوباره میخونم میگه که القول بان الشمس ذات جرم كبير و حرارت عظيمه جدا تسبح في الفضاء في مسار محدود ومنضبط و حدود لا تخرج عنها قيد من منا. و ها ده شمس حدثت صدفه دون خلق خاله تساور داشته باشین قول اول کرشید با این عظمت و این حرارتش در این مسیری که داره ای میکنه یهویی به وجود مده یهویی در این مده قرار گرفته آفرگاری نداره آفرینندهی افر نداره تساور شکر میشه یک ملحد یک ملحد چنانچه قبلا پاسخ دادیم تصورش بر اینه که بله یهوی به وجود اومده خب الان این یهوی وجود اومدن درستره یا اینکه ما بگیم این خورشید آفریدگاری بزرگی داره با اون حرارت با اون جرم این خورشید را کلقه کرده آفرید در مدار قرارش داده و قدرت سجده هم بهش داده آفریدگاری داره آفرینندگی داره و اون آفریدگاری قدرت سجده هم بهش داده کدوم این دوتا قول اولاترن به قبولیت و صحت قول اول که یهوهی به وجود اومده خالقی نداره، آفریدگاری نداره. قول دوم آفریدگاری داره و اون آفریدگار قدرت سجده هم بهش داده. این نزمه علکی نبوده، این نزمه بیوده نبوده، این نزمه همینطوری به وجود نیومده. میگه میشه همینطوری به وجود بیاد. باچ عقلی. یهوهی این نزمه و ترتیب به وجود بیاد. لا شک ان القول الثانيه ولا القول بدون شائ قول دوم اولا و اولاتر به قبولیت و صحت ناس ذهار عقلي، فالخلاصة خلاصي أن من أساليب الملاحدة ومناهجهم في التقرير والمناقشة اعتماد أسلوب المغالاة الجدلية والتلبية على المحاور. أختي جبود بحثوا جفتجو جدل ميكونان سالميكونان ترى در مغالاة يك سوالات سؤالات اشتباه إشتباه ترى در شكوشو هبندوزا. وهم في هذا لا يحترمون المنهج العلمي السليم في المناظرة هيك باخ. یک منحج علمی رو با تینه نمی کنن. بحث بحث گفتگوشون علمی نیست فقط مغالطه از شک شبه هست یک قاعده بدهی رو شما نمیونید همش تئوریه. یعنی شما الان کل استدلال هایی که از همون بحث عقل و شک و این همه همش تئوریه. هیچ کدوم واقعیت حقیقت نداره فتجدهم هم مثلا یطعنون افیدین الاسلام میاد مثلا شما میبینید طاره در دین اسلام وارد میکنن بحث حجاب مطرح میکنن بس ازدواج و تعدد را مطرح میکنن چرا باید یک مرد چهار تا زن بگیره در یک مسئله کوچکی یک مسئله ریزی که شرع دینه بحث بر به جامعه و بس بر میگرده به مصلحت خود انسان الله نماز روزشه و یحاولون تغطيه ضعف المنهج الحادي من خلال هجمه شرسه و جری علی الاسلام سعی میکنن ضعف خودشون رو جبران بکنن با حجوم محکم و سختی بر علیه السلام. ثم هم في هذا الطعن غالتون اشد وقتی که میخوان تن وارد بکنن، میخوان شک و شبهه وارد بکنن بعد دین اسلام سعی میکنن مغالطه اندازی هم بکنن. با یک سری سوالات اشتباه، حيث تجدهم حين يتكلمون عن الدين يخلطون بين الحق والباطل، میخوان باس از دین بکنن، حق و باطل رو با قاتی قاطی میکنن، و صحیح و غیر صحیح، دروس و دروس. او تجدهم ينتقدونه و ما ينتقدون الا مفاهيم لبعض الفرق المبتدعه مثلا شما میبینید یک سری مغالطه اندازی میکنه مثلا یکی از فرقه های اسلامی یک حرفی رو زده یک مسئله را اومدن گفتن حالا اون مسئله رو یاد نکشه فکر میکنه که کل اسلام همینه نه این یک فرقه اینجوری حرفی زده کل اسلام این نیست در همه چیز شک پریندازه ال در قول نیچه و شو فنهاور و اسمیناگی همه همه کس و هر کسی هر حرفش جز اینا احتمال نادرستی داره الا حرف بزرگان خودش او ينتقدونه و ما ينتقدون ليس الا اجتهادات فرديه لشخص معین میان انتقاد میکنن شک و شبهه وارد میکنن ولی که برمیگرده به فردی یک شخص یک حرفی رو زده میان انتقاد ازش میکنن فیعممون الحكم علی دین کله بعد میان روی کل دین ایراد میگیرن نه دین شما اینجوریه نه اشتباهی یک شخص اجتهاد یک شخص، یک حرفی, یک حرفی میزنه که مستندش قرآن یا حدیث است شما نمیتونید یه بکشید که بگید نه دین اسلام اینه چون فلان مسلمان این حرف زده وقتی حرف شما میتونید انتقاد روش وارد بکنید که اون استناده قرآن یا سنت صحیح ثابت باشه حتی اون سنت دروغی هم شما نمیتونید بهش استناد رو کنید او یا من خلال نداره فی حال المسلمین میان؟ کسی چیزایی کها زیاد گ میکشن میگن ما ماها روز مسلما ها بکنین بعدبختی فق فللات و ما هم علیه عليه مظرفیم که عصر میان میگن که نووا کنید نبوم به حس ای دارن نه اتمی دارن هیچی نداره مسلمان هاعاجزن یه مبا هم درست نمیکنن ماشین درست نمیکنن. او یه فیه و نفححی ان اسلام و علم ضداننی لا اجتماعان میگن اسلام و علم امروزی با همدیگه سازگار نیستن دو تا زد که با هم دیگه جمع نمیشن. دین یه طرف دنیا یه طرف دیگه است. ولا شك أن كل هذا ظلم وجور ومغالطة إنها مش ستمة جورا، ستة زبودين الإسلام ومغالطة هندازية والمنهج العلمي السليم والعدل والإنصاف كلها تقتضي أن ينظر إلى الإسلام في نفسه إنصاف عدل إيمان كه ما إسلام بعز ديكاهي خد إسلام برسيب يكون يباون أسسلي كده داره عالقرآن والسنة نأين كده ما بيعم مغالطه اندازی بکنیم بیم ایرادی رو یک مسلمانی وارد بکنیم یا یک حدیث دروغینی یا یدک بکشیم یا اشتباه مسلمانی رو بخوام یدک بکشیم وانیوحکم علیه من خلال احکامه بیا بیم احکام اسلام بررسی بکنیم مثلا خب اونا مثلا میان قانون بردداری اسلام رو مثلا زیر سآل میبرن حالا یک قانونی بوده از قبل بوده دین اسلام اومده براش اصولی گذاشته خب میگه چرا در اسلام مثلا باید داری باشه خب مثلا به مسلمان ها دولتی برای خودشون تشکیل دادن رومی ها و فرس اومدن به جنگ با آنها. جنگ جنگا بوده کسی نمیتونه انکار بکنه اون دورانی که فرس برای خودشون امپراتوری داشتن و روم هم برای خودشون امپراتوری داشتن خب در جنگ ها امتا چیکار میکردن دو تا عبر قدرت امپراتوری به جنگ هم دیگه اومدن حالا قبل از اینا هم بودن آشوری ها بودن فراعنه بودن بعد برید تاریخ رو بخونید خصوصا اون چیزی که در تورات عهد قدیم اومده شما برید بخونید اون جنگ ها و نبردهایی که بر علیه یهود شده مثلا حکومت هایی که اومدن حالا چه از اسکندر مقدونیش چه از اون رومانی ها چه از اون یونانی ها و چه از این دولت رومی ها که ما داریم امپراتوری رومی که تشکیل شد بعد اومدن فرس را شکست دادن بعد مسلمان ها با جنگ با رومی ها وقتی که شنیدن که رومی ها قصد حمله به مسلمان ها رو دارن خب باید در جنگ ها چی کار کرد دشمنی اومده با مبارزه و جنگ با ما دشمنی اومده به ستیز جنگ با ما خب ما باید مسلمان رو داشته باشیم ما باید دفاعی داشته باشیم که سینور رو در مقابل آنها سفر بکنیم و از خود ما دفاع بکنیم خب این جنگ پیش اومد ماها تونستیم رومی ها را ماها تونستیم رومی ها را شکست شکستبدیم. خب وظیفه ما در قبال سربازان رومی چیه؟ حالت اول گزینه اول اینکه این سربازان را آزاد بکنیم. الان اینها اومدن آماده شدن با تمام قدرت به جنگ با ما ماها تونستیم شکستشون بدیم. الان بیایم این سربازان را برشون بگردونیم به کجا به سر جای خودشون برید بر بگردید. خب احتمال داره اینا دوباره قدرت بگیرن دوباره بیان به جنگ با ما. خب من نمیخوام که اینا بیان به جنگ با من دوباره با چه کار بکنم حالت اول اگر من این گزینه رو انتخاب بکنم بر علیه خودم اقدام کردم یعنی بیام اینها رو آزاد بکنم که هر کاری دلشو خاص انجام بدن دوباره بیان به جنگ با من خب اینجا من با دست خودم برای خودم چاله و چاهی گندم که خودم توش بندازم بر علیه خودم اقدام کردم این عقل اصلا و خرد اصلا این نمیگه که من بیام راحت اونا رو را آزاد بکنم که باز بیام به جنگ با من قدرت این نمیگه و حفظ قدرتم این نمیگه اگر میخوام من قدرت خودم را حفظ بکنم باید از شر اونا خودم در امان نگه دارم آزاد کردن همین طوریشون آزادشون بکنم بدون بهاب، بدون عجر و پاداش این اقدامیه بر علیه خودم گذینه اول پس این که آزادشون بکنم. گزینه دومی که زندانشون بکنم. زندان کردن اینها هم به داره. زندان کردن اینها هم به ها داره. من بعد آب و غذا هم بدم زندانی منن. هم. آدم کش باشم بیام اینا رو بگیرم که بکشم. توانشو دارم زندانشون میکنم. اگر توانشو نداشتم دشمن من هم به جنگ با من. چکار میکنم؟ میکشم؟ یا اینکه فروشمشون به خودشون شما میخواین این زندانی رو آزاد بکنید من توان خرجش ندارم خرجش رو بدید برش دارید این گزینه چند سوم گوزینه یا چهارم گوزینه پنجم اینکه من جا ندارم نگایشون دارم زندانی ندارم زندانی ندارم خرجم ندارم و نمیخوام من بفروشم که دوباره بیان اونم قدرت بگیرن برای من چه کار میکنم خرید و فروش میکنم معامله میکنم عنوان اسیر به این اون عنوان برده میدم. مسلمانی حق داره، آقا از این اسیر نگهداری بکنه و در ازای آب و غذای خودش کار بکنه برای اون کسی که صاحبشه. یعنی اون سربازان اسیر چی میشن؟ اسیر اون مسلمان و اون مسلمان در ازای آب و غذایی که به اون اسیرش داره میده ازش کار میکشه. الان نظام برده, برده داری اسلام عادل شد، انصاف شد یا نشد؟ شما بگید. قضاوت با شماست. کدام یکی از این گزینه‌ها رو شما انتخاب می کردید؟ آزاد می کردید؟ این که دیوانگیه. یا می کشتید. سر سرشون جدا می کردید. یا اینکه که یا اینکه زندانشون می کردید و خرجشون بدون بها می یا اینکه در ازای آب و غذاشون ازشون کار می‌کشیدید. کدام یکی از این پنشتا تا آقلانه تره؟ خردمندانه تره؟ یک گزینه‌ها اسلام این گزینه‌ها ها را گذاشته. بر اساس مصلحت یکی از این گزینه‌ها ها را انتخاب میکنه. گزینه‌های های جنگیه. این آداب و رسوم جنگه. جنگی میگه و اسلام باقی نمیمون. اسلام 1400 سال سن بلنده. پایداره. نتونه سن. نه رومش نه فرصش اسلام رو شکست بدم. سرفرازه. همون قادی نیچین که و سمارخاری که اسلام رو میکنیم. همونا اسلام اونها را عزت داد نه اونها اسلام را اونها وسیله ای بودن. من اگر اسلام رو اجرا کنم، من عزت من و شرافت من میشم اسلام منو عزیز میکنه من اسلامو عزیز نمیکنم. اسلام نیازی به بند نداره اسلام مال الله جل جلاله صاحب داره برای خودش اسلام محتاج من نیست وإذا أريد الحكم عليه من خلال أهله أكربي خير حكمك نبأ الإسلام بنصوص أهل الإسلام مسلمون، فليكن المعيار من طبقه على وجهه وقام به خير قيام أكربي خير شموع مسألة بزني نبأ المسلمون مسلمون أنا قارن عبارة بزني ما يا ما في لوني روا مسألة بزني، وهم السطر الأول من هذا الأمة هذه الأمة بمسألة أن رديع بليس مثال بزن و ما اثمر لهم ذلك من عز وتمكين شجونهم الله عزتشون داد سربلندشون کرد و كيف انهم كانوا شامه من تاریخ البشر شطور اون یک نشانی در تاریخ بودن یک روشفیدی برای اومد بودن والله کجا بودن کجا رسیدن فورس شگرا با اون امپراتوری با ابرقدرتی شکست دادن اینو تو یه حرفشو بزن از اون صحرا و از اون شنو شنزار بلند شدن اومدن یک امپراتوری که ده برابر ارتش مسلمان ها بودن اون فرس و اون امپراتوری و اون سربازان و لشکریان چطور اون عدد معدودی که نه اصلهه و نه تکنیکی در جنگ و نبر داشتن چهار تهره بادی نیشینی که دمپایی نداشتن پاک کنن چطور تونیستن شما فرس مثلا مها فرس را شکست بدن آبا و اجدادمون رو در ایران شکست بدن جوز اینه که یک قدرتی در دونون خودشون از ایمان از اعتقاد داشتن بعض تطبيق الشريعة ك الله النهار بيقولوا إسكار نصرت دوت ما أعتقد مبرئينه الله نهار بيقولوا إسكار إن تنصر الله ينصركم الله نصرت الشن دوت بخاطر بوي بعديشون بخاطر إن حق الحق إسلام رادوا كاردن وصفحة بيضاء لا كان ولا يكون مثلها يكسب فيه بوكو سيفيليانا كنا مثل ها كسيخو هادو مات وانا كسيخو هاد بود خب برن به محور سبومه كتاب بحث وسائل نشر الحاد والواقع الواقع وصفية والواقع يشهد أن الملاحدة ناشطون في نشر باطلية ما نبينيم كه سخت كوشا و تلاش ميكنن ملحدين در نشر الحاد لاسياً ما في محيط ابناء المسلمين خوصاً در جوهيك مسلمانا زندگي ميكنن وذلك الأمور أسبابي داره يعني علت تلاش ملحدين در نشر الحاد أسبابي داره جملة أسباب أن الأول أن الملحد في العالم الإسلامي إسلامي يشعر بالغربة. يك ملحد أساس الغربات بيقوله بيكسب كسي هم فكري نداره هم داردي نداره. شو مسلم ميبينه مساجد بارحة هسا نماذخونه هسا. خودش جتنه هم يبينه. هم فكر خودش راه زيادة يقوله. فهو يريد أن يكثر عدد الداخلين في هذا الفكر. بيخد زيادة ملململحدين زياد, زياد بشن حتی تخف عنه و عنه, عنه هذیل غربت های این که احساس تنهایی نکنه احساس گوشیگیری نکنه تکی و تاکی نکنه و ها کده شأنو في كل دی امر قبیه هر کسی کار زشتو هر کسی که یک آلودگی فکری رفتاری داره میخواد اونو پنهان بکنه مثلا شما دیدید یک کسی مثلا بیاد مثلا زناب با مادرش بکنه فاحشه انجام بده بعد بیاد کلیپ از خودش بگره بگره نواه کنید من میکنم. كلهم هيوني قرميكنه. سشت فإنه يتمنى أن يصير الناس كلهم مثله حتى يتبعنه بعض ما يجد. يكمل حدث سعيدركه عن فكرونش زياد بشن اساس تنحي وقربت نكنه حتى خليك چند نفري پیدا باشه همون طور که اساس ما رضي الله عنه ميگه رواد مشو من عن عثمان رضي الله عنه ودت الزانيه ان نساء, نساء كلهن زواني یک زن زنا کار و فاحشه هم داره که همه زن فاحشه باشن که اساس قربت نكنه کسی با پس خب اول اینکه اسباب که ملحدین تلاش میکنن که فکرشون انتشار بیاد به اول اینکه احساس قربت دارن دوم الثاني انه اذا کثر الملاحده وعلى صوتهم اسبح قوه مؤثره في المجتمع که ملحدین زیاد بشن تاثیرشون بیشتر میشه رو جامعه تاثیرشون بیشتر میشه تستطیقن تاثر در واقع به حسب اهواها راحت میتونن تاثیرگذار باشن همونطور که ما ببینیم خصوصا از کانال‌های تلویزیونی و فضای مجازی که الله خواهد وغالب الملاحدة من ذوي الالحاد النفعي المادي فلا يرمون إلا الشهوات بيشترموا الملحدين كدعوه بسوي الالحاد ميدان خصوصا الالحاد المادي و جدا كدن دين السياسه خصوصا شعاره شنو هي شي زي رايدك نمكشن جزء شهوه وحوا وحवस جزء بي حجابي بيvndباري ازادي كشعاره شنو سو رغبت الملحد این یطمئن نفسه میخواد دلش آرام و قرار بگیره یک ملحد که برحق دالا مثلا تک نیست تو جامعه فالملحد دو شخصیت انقلقتون شکاکه یک ملحد شک دار و داره در همه چیز شک داره تردید داره و همین سبب میشه که یک استرابی در داخل دلونش احساس بکنه احساس شکاکی و این که بر هر چیز که بگن نه من خیلی آرومم و خیلی آرامش دارم و خیلی قرار دارم برای خودم استقرار استقرار دارم من روانی نیستم و الله روانیه فاذا اذا الواحده الواحد تل والآخر ینظمو ينضم ينضم الى فکر الالحادی سکنت نفس و بعضشه وقتی که ببینید یک کسی همکیشش و فکرش وجود دارد بلش آروم میگیره نواه کنید و وقتی که یک میاد بحث میکنه میگه نواه کنید این مسلمان های تند رو به آدم کشه دائشیه فلا انگاه که کل مسلمان ها دائشی مسلمان ها چه دو میلیارد؟ داعش قدم صد هزار نفرم نمیشن ده هزار نفری شد مثلا زیر سایه پوشش آمریکا دارن یا تو افغانستان حمایت میشن از غرب یا تو عراق یا تو سوریه و غیر حمایت غربی پشت سرشون ولی الله عددی اندی بیش نیستن. چی بودن؟ کجا بودن از کجا آمدن این اژیا؟ شما کل مسلمان های دنیا را فراموش کردید چسبیدید به چهار آدم کششت از خودت رو شر بکنید عمل چهار تا فرد تنروب بی سواد با این همه دانشگاه ها و فارغ تحصیل ها از دانشگاه ها و مدارس اسلامی قیاس نگید قیاس تشتباست اون بی سواد رو و اون با سواد. کدوم با سواد حرف اینها را تعیید کرده بینید بزرگانی که در عالم اسلامی هستن البانی رو ببینید منباز ابن عثیمی رو ببینید این که بزرگانی که اعتبار دارن نزده مسلمان ها جهان ببینید کدام یک از این بزرگانی که به عنوان بزرگی و عالم بودن شناخته شدن اینها را تعیید میکنیم مثلا داعش رو تعیید میکنیم خب اما بحث بعدی وسائلی که استفاده میکنن در نشر الهادشون ملحدی اما عن الوسال یعن الملاحدة من خلالها إلى شباب المسلمين ذكورا وإناثا فكثيرا راهيك فبسائل استفاده يكون الملحدين دار نشر الحادي ميان ميانة زيادة منها الكتب الحادية نشر كتابي الحادي التي تبع كتابيك فروقتي مشو كثيرا كتابيك معيدة فكرة داربين وشوفونها بلا شو ما إن كتابي فالسافي زياد مبينت جامع أو التي تنشر عن طريق الشبكة يون بحثات مقالاتك شما ما دار انترنت مبينت وی ان تتكون دیت دیت اللحد للحاد صورتت مقع لازم هم می که این کتاب ها مستقیما بیاد بگه که این کتاب مروج فکر الحادیه یعنی هدف از این کتاب فکر الحادیه نه. بلکه زمنان تشویش ایجاد میکنن زمنان میان استرابه در فکر مسلمان ایجاد میکنن نسبت به دین خودش شک و داشته باشه و مسلمان وقتی که این کتاب رو می خوه. تکون صریحه احتمال داره که صریح باشه و یمکنن تطرحو ما يسمى بثقافت الشهر یا فرهنگ شک را شک و شبه را در دل مسلمان با اون کتاب ایجاد میکنن او تأصیلاتون تو ادی الى اضعاف الثقة بالنصوص یا میان به یک اصولی یا قواعدی میان شک و شبه در اعتماد باب ناس به قرآن و سنت ایجاد بکنن یعنی بگن که این قرآن شما این طوری میگه مثلا میبعث برده داریم همه سازد و این قانون بردهداری برددار... چیه ظلم مثل انصاف نیست. در صورتی که ما گفتیم کمال انصافه. خب این کسی که علم نداره، درایت نداره، حتی به آداب رسوم جنگی شناخ نداره، خب میاد میگه بله مسلمان آدم چطور بیاده کسی مثلا بکشه؟ خب این و آخره خب مندالله به جنگش اشتباه کرده، خب اشتباه کرده، من رو بکشه. من نباید از خودم دفاع بکنم، نظارم من رو بکشه؟ بذارم هر کسی اومد رو بکشه بچه‌م رو بکشه زن و همسرم رو بکشه به همین راحتی خب اگر اینطوری خودتون رو بکشید دیگه ما اونا چرا میکشید؟ بیاد خودتون رو ب... بیاد خودتون رو بکشید راحت بشیم از دستتون چرا رفتید بجون چرا اون اومده به جون ما افتادن اونا اومدن به جون ما این قانون برده داریم مجبور شدیم بذاریم والا اگر قصد و میلی نداشتن در جنگا برده با ما ما هم میل نمی کردیم به جنگ نبرد با آنها مسلمان ها این کارو نمی کردند با آنها او تبغیض دینی فی نفس القاره یعنی شما مثلا مشخصه هایی که به دست دارن کتاب هایی که که ترویج میدن خصوصا کتاب های فلسفی هدفشون حالا یک طرفش ایجاد بی اعتمادی در دل ما هست نسبت به دینمون از یه طرف دیگر ایجاد بغض بکنن نفرت بکنن نگاه بکنی زن حجاب بپوشه چادر به سر بکنه خب چیه دلت پاک باشه چشمت پاک باشه چرا به ناموس مردم بادم نگاه بکنه خب این بالاخره دختره با... آزاد با... باید باشه چرا باید زندانی بشه چرا باید خاصه های نفسیشو مثلا بخواد اینطوری در یک زاویه بسته مهارش بکنه چرا دخترم دوست داره هرچین لباسی که دوست داره بپوشه خب پس اون پسر هم آزاد بذاریم دیگه باشه هم زنا بکنه هر کسی خواست با هر کسی هم زنا بکنه میگه میشه بعد بچه مالکی باشه این نظامیه یا هر جمهر و تصویر و فی صورت القیود و الاغلال یعنی تصویر ذهنی که در ذهن ما ایجاد میکنه کتاب های این مقالات اینکه اسلام یک دینی پر از زنجیر و, غل و قفل انگار که اومدن دست, دست, و دست و بستن با این اسلام هیچ کاری نکنیم. یعنی من هیچ کاری نمیکنم. من زن و همسر رو بچه ندارم. کی گفته اسلام آزادی رو از... اون آزادی که فساد رو از تو گرفته. نه آزادی در امرار و معاشه، در رزق و روزی، در تعاملت با پدر و مادر و زن و همسر. هیچوقت دست تو باز گذاشته. بهترین ها و بهترین ها را انجام بدی. دست تو پسته از بدی ها آدم نکش دزدی نکن مال دیگران را نخور بچه مردم را گمراه نکن کجاش بده این بده وقتی که دست را از بدی کسی بگیره نظری کسی را بکشی بده عقلت مشکل داره عقلت فاسده این ملحد و بی هاد ایل خیل ملاحده فریستم لساحل اللحات اینچینی شکار میکنن شکارشون رو میارن به ساحل الهاد میکشونن اینطوری سید میکنن تو این مسلمان سید نشو، افتخار کن به دین و فرهنگ و به اون اعتقاد و مرامت به اون زمیری که در دلتو گذاشته مرامی که در دلتو گذاشته عدب و مرامی که نسبت به پدر مادرت داری نسبت به خواهر برادرت داری حرمتی که به اونها قائلی دین اسلام دین حرمته دین دوستی، نه دین ستیز و جنگ اسلام این اومده ترویج بده. اینا هم یسیلون ایل بغیتم عن طریق حلقات لحلقتم واحد اینا تنها به کتاب ها خلاصه نمیگوند. بلکه براه های زیادی برای نشر و ترویج فکرشون دارن. من ها کدرک از اونها القنوات الفضاییه. کانال های محوره. شما در ظاهر یک کانال می میبینید. مثلا اینا هایترنشنال یا منوتو یا صدای امریکا نمیده. این رسانه غربی که من کار ندارم حالا شما فکر بکنید که حالا مثلا هم فرض من اومدم جانب اونهایی که مثلا هم بالفرز اینا دارم با اونها دشمنی می جانب اونها رو دارم می گیرم من کاری به کسی ندارم اینجا من حرف از دین می‌زنم. بحث من با ملحدینه اینها مروج الحادن اینها آزادی را یدک می دشمن من کسی که دین من رو مشکل میبینه من افتخارم به دینمه افتخارم به پدر و مادرمه افتخارم به ناموسمه اخت... افتخارم به مرام و زمیری که در دل دارم من بیوجدان نیستم یک ملحد بیوجدانه حرمتی برای پدر و مادرش برای جامعهش قائل نیست آدم کشی میکنه، خیانت میکنه، غد میکنه، دزدی میکنه، قتل میکنه فاحشه را راه اندازی میکنه دنبال این نیست که سرپناهی دختری داشته باشه، خانوادهی و کانونی داشته باشه ولی که مسلمان نه دنبال خانون و خانواده و کانون و احترامه دنبال سرپناه برن دختر بیچاره دنبال این نیست که مردم را بیچاره بکنه دنبال بیچارگانه که دستش رو بگیره یتیمه کمکش کن وظیفته فقیر مستمنده دستش بگیر کمکش کن اینکه مسلمان این کار نمیکنه ای بس مسلمانه نه از اسلام اسلام تشویق میکنه سوره بقره از اولش تا آخرش همش بحث انفاقیه هر جا هم بحثش از یهودم اگر اومده یا غیر اومده آخرش به بحثیست انفاق و صدق دادن خاتمی میشه من ذا الهی یقرض الله قردن حسنا کی هست قرض به الله بده با اون صدق دادنش و الى آخر بزرگترین سوره قرآنم مز بقره هست شما برید بخونید از اول تا انتا دیوی سا اشتاد و اندی آیه هست از سوره بقره شما برید بخونید نزدیک به دو جز اینیمه نزدیک به سی صفحه هست بخشید پنجا صفحه است از شسته صفحه قر چیز حلوهش یک سیزه هم قرآنه این همه توصیه به انفاق و دست اینو این گرفتن دست چهار تا بیچاره گرفتنه مگر اگر اسلام گفته حجاب بپوش خانواده دار شو ای تو مسئولی تو خونت بشین و این مرد تو وظیفتی که خرجش بدی و کمکش بکنی و سرپناهش بدی تو سرپرستشی میگه اینا همه علکیه اینها ایجاد نظمه همانطور که خورشید در یک نظم و در یک مداری میچرخه زندگی هم برای خودش مداری داره. میگه میشه تو رانندگی بکنی چرا رو شب خاموش بکنی تو یک جاده‌ای بگه که آقا من چرا خاموش میرم بذار تابلو نباشه بذار نور نباشه. چطور میخوای رانندگی بکنی؟ اصل اومده برات قانونمند کرده زندگیت. حد و حدود گذاشته برای همسر، حد و حدود گذاشته برای شوهر، ظلم نکنه، کتک نزنه. و علاوه بر حق حقوقی داره اون شوهر، حق حقوق داره اون زن. والله جز جز زیبایی و خوشی در اسلام چیز دیگه نمیبینید. برید یک زندگی مسلمان رو ببینید از پشت آینه ها بیات بخونید به عنوان مثال من خودم کتاب سرای سعادت یک از علتایی که نوشتم همین بود. که انسان ببینه اونها چطور زندگی کردن رسول الله صلی الله علیه و چگونه بوده با همسرانش. اون مطرحه برای ما که چطور بوده با همسرانش نه من اصل اسلام میان اونها بوده اونها تونستن اصل اسلام را اجرا بکنن و اصل اسلام را در زندگی خودشون تطبیق بدن و کنال های محوره چه کار میکنن؟ من خلال عرض مفاهیم الحادیه واضحه و مبطنه یا یک مفهوم الحادیه واضحی سریحی یا غیر سریحی که در درونش قواعد و اصول الحادیه را دارن میان ترویجش میدن عن طریق برامج و حوارات و مناظرات، از راه گفتگو، مناظره او افلام، للکبار اصلا، فیلم ها، چه کارتون، فیلم های کارتونی، چه اون فیلم مستند که ایجاد میکنه و اما اله دالک انماع فیلم که دارن ایجاد میکنن. یک جای هست، میان مثلا، مثلا از یک کانالی که کانال انترناشنال میکنه مثلاً. خب، میاد زاویه رو مثلا میبره به طرف اسرائیل از اسرائیل بنوان یک دولت مدنی، یک دولت انسان دوست جلوه میده مطرحش میکنه خیرخواه موها بودن و هستن دزدانی اومدن بلند شدن، سرزمین رو غصب کردن مردم اون سرزمین رو دارن، میکشن و کشتن اینها شعار از آزادی و انسانیت دارن می زنن. تاریخچه 90 نوت سالهش رو باید ما فراموش بکنیم باید الان دوربین ببرن به سمت سوی اوناها و اوناها را درست و صحیح جلوه بدن انسان دوست و مهربان جلوه بدن نوت سال و ست سالش کشت و کشتا رو ما فراموش بکنیم بگیم نه الانش الان بعد ست سال اینا دنبال انسانیت هست سال کشتر امروزش کسی رو نمیکشن هرچنگه تا امروزش دارن میکشن تا امروزش دارن چپاول میکنن میدوزدن غارت میکنن بل یمکنن یکوندال که من خلال البرامج العلمی الوثاقیه جاهایی هست با کانال های علمی یعنی کانال که مثلا خوصا مثلا نشنال جغرافی مثلا یک کانال غربی که میاد از محیط زیست مثلا به فرص فیلم میگیره. ولی که در ضمن اون فیلم هایی که داره تولید میکنه چیه؟ نشر الحاد رو میده. الاتی تو اصل نظریت دعم الالحاد میاد مثلا اون تئوری های الحادی را بخورده ما میده بدونه که حس بکنیم. که نظریت داروی مثلا, مثلا نظر دارفیلم مثلا اون تئوری داروی, داروی. داروی. میمون بودن اسلو. انسان. میاد مثلا این رو بزرگ جلب میده و هادا ما تقوم به بعض القنوات الوثاقی المشهورات اليوم همه کنالایی که مستندن کانال مستند میان این قضیه را زیاد تربیش میدن و منها ایضا اللقاءات و مباشراتی مع الشباب از جمعه راه های نشر الحادش و میان جوان ها بسائلی که استفاده میکنن کنن گفتگوها هست اون سالون ها و اون کلاس های گرده همویی ها و میزگردهایی هست که دور هم میشینن. دختر و پسرش با هم میشینن. مشکلاتی که دارن با اسلام و مطرح می کنن تا اینکه بغض نفرتشون نسبت به دین اسلام زیاد بشه. جای حقیقیه و جای مجازی؟ هست. جای حقیقی اون میزگرده است و جایی نه؟ یک گروه واتساپیه. یک فردی به نام ایکس ایدرک میاد تعمه هایی که در اون شرطا جاهلی که در اون گروه هستن مجموعه هستن اونها را با اون مقالطه اندازی فریب میده و در دلش نسبت به ایمانش و شکش رو به وارد میکنه عن طریق جلسات خاصه جلسات خاص اون ملتقيات عامه یا جاهایی در گرده عمومی، کنفرانس. یا میزه گردی او سوالی مجالسی هست گرد همایی هست تقافی یا فرهنگی خسن این خیلی زیاد مثلا جایی از تاتر جایی از بعضی از فیلم ها شما مثلا می‌بینید، میخواد فیلمی رو معرفی بکنه جایی مثلا شما تصورش هم شاید نداشته باشید مثلا یک فیلمی در هالیوود یا مثلا بولی یا هر جایی هست از دنیا از این مؤسسه های سازمان هایی که تولید فیلم می کنن و فیلماش رو هدف داره خب شایی شما مثلا می بینید که یک کلیپی در عرض یکی دو دقیقه مثلا میاد فلان میاد قسمتی از اون فیلم رو یدک می مثلا آقا مثلا پرواز انسان یا نمیدونم سوپرمن شاید در ظاهرش یک فیلمیه در ظاهرش مثلا یک کارتونی برای خودش پرواز انسان و یا قدرت های خارقلاده داشتن خب ظاهرش اینه ولی در باطنش چیه؟ نشر الحاده یا همون چیزی که یهود ساختن موش و گربه تو انگلیسی مشهور به تامنجیری اینا فیلم هست که هدفدار بوده یعنی هدف داشتن در ترویج این فیلم ها و داستان پشت صحنه بوده که سبب شده این فیلم ها را بسازند و میان ماها نشرش بدن خب به همین قدم شبک اتفاق میکنیم فردا شبه انشاءالله هستیم انشاءالله سعی میکنیم فردا شبه باشیم با دیگر وسایلی که تأثیر بیشتری دارن از این وسایلی که الان یاد شد وسایل دیگری هستن که تأثیر گذارتر هستن در بحث بحث نشر الحاد، خبها من قد يتفهم يكون. بسمحناك الله والحمدك. سبحان الله والحمد لله. صلى الله على محمد وعلى آل محمد.